فصل هم. در این میان جمعیتی مرکب از هزاران نفر گرد آمده بودند به طوری که یکدیگر را زیر پا می گذاشتن. عیسی قبل از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت از خمیر مایه فریسیان یعنی ریاکاری آنان برحذر باشید هرچه پوشیده است، عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است، آشکار خواهد شد. بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچرا که پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید شما را آگاه می‌سازم که از کی باید بترسید از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد آری می‌گویم از او باید ترسید آیا قیمت پنج گنجش دو ریال نمی باشد اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست؟ علاوه بر این حتی موهای سر شما تماما شمرده شده است. هیچ نترسید. شما از گنجشک‌های بی‌شمار بیشتر ارزش دارید. بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمیشناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که بر صد پسر انسان بگوید، بخشوده خواهد شد، اما برای آن کسی که به روح القدس بد بگوید، بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقتی شما را به کنیسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمان نوایان نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می که چه بگویید؟ مردی از میان جمعیت به عیسی گفت ای استاد به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند جواب داد ای مرد کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است بعد به مردم فرمود برحذر باشید از هر نوع حرص و طمع خود را دور بدارید زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمیدهد سپس برای ایشان این مسئل را آورده گفت مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد با خود فکر کرد که چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم سپس گفت خب فهمیدم چه کار کنم انبارها را خراب می کنم وانها را بزرگتر می سازم قله و سایر اجناسم را جمع ورین کنم آن وقت به خود می گویم ای جان من تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت میکند آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران، اما خدا به او فرمود، ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی، پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟ این است آقابت مردی که برای خود ثروت می زد ولی پیش خدا مفلس است. به شاگردان فرمود به این سبب است که به شما میگویم به خاطر زندگی نگران قضا و برای بدن نگران لباس نباشید زیرا زندگی بالاتر از قضا و بدن بالاتر از لباس است به کلاغ‌ها فکر کنید نه می کارن و نه درو میکنند نه انبار دارند و نه کاهدان ولی خدا بآنها روزی میدهد شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید آیا یکی از شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیه پس اگر شما کاری به این کوچکی را هم نمی توانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نمو سوسنها تعمل کنید. نه ریسن و نمی بافن، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علافی را که امروز در سهحام میروید و فردا در تنور سوخته می شود، چنین می آراید، چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه میخورید و میآشامید اینقدر تقلا نکنید و نگران نباشید. چون اینها تماماً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می کنن. اما شما پدری دارید که میداند به آنها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه چیزها به سراغ شما خواهد آمد. ای گل ای کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید، بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسهایی فراهم کنید که کهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کاسته نمی گردد، و هیچ دو نمیتواند به آن دست بزند و بید آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراخهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند. و حاضرن که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان میآید آنان را چشم به راه ببیند یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت چه نیم شب باشد و چه قبل از سبیده دم؟ خوشا به حال آنان اگر اربابشان وقتی میآید ملاحظه کند که آنها چش راه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دو چه ساعتی میآید آید، نمی گذاشت وارد خانهش بشود. پس آماده باشید، چون پسر انسان در ساعتی میآید آید که شما کمتر انتظار آن را دارید. پتروس ارز کرد، خداوندا آیا مقصود تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟ عیسی خداوند فرمود خوب کیس آن مباشر امین و با تدبیر که اربابش او را به عنوان ناظر منصوب کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش میآید او را سر کار خود ببیند یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد اما اگر آن قلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار قلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن قلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی ارباب خواهد رسید و او را تک تک خواهد کرد و به این ترتیب او جزو ناموتیان خواهد شد. قلامی که خواسته های ارباب خود را میداند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند با شلاق ضربه بسیار خواهد خورد اما کسی که از خواسته های اربابش بی است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه میباشد ضربه های کمتری خواهد خورد هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد کرد من آمدم تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر اینطور نیست بدانید که من آمدم تا تفرقه بیندازم زیرا از این پس بین پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، مادر شوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادر شوهر. همچنین به مردم فرمود، شما وقتی میبینید که ابرها از مغرب نمودار میشوند فورا میگویید، می باران ببارد و باران هم میبارد و وقتی باد از جنوب میآید میگویید گرمای شدیدی خواهد شد و همینطور می شود. ای ریا شما که می به زواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیشبینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار آجزید؟ چرا نمی راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی علیه تو ادعای کند و تو را به دادگاه بکشاند، سعی کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او کنار بیایی، و الا او تو را پیش قاضی می برد، و قاضی تو را به دست پاسبان میدهد و پاسبان تو را به زندان می اندازد، بدان که تا دینار آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد،